شریعت کیسود مان جلد دوم فصل هفتم تارک دنیا ترک دنیا اکسلامه است که معمولا از سوی کسانی که درکی از ابدیت ندارند اتخاذ میگردند انسان یا رهبرند و یا پیرو ولیکن حتی روشنبینان آنان که قلبن نسبت به ارضیابی های خود اطمینان دارند نیز برای اجتناب از دام نفس می اهداف آلیه خود را در جهتی درست پرورش دهند. ایشان غالبا انزوار برای خود تجویز نمی کنند بلکه مردان و زنانی هستند که آنقدر از نعمت حیات مشروفند که با وجود تمامی مخاطرات زندگی در آن حل می شوند. از نقطه نظر انسانی ایشان نه تنها عاشق زندگی اند، بلکه عشق را زندگی میکنند، کنند مثل ربازارتار و گوپالداس معیار خوب بودن یک اکیست بیاتفگی نیست اینها نزد این افتاتید بی اعتبارند. اما در عین حال ایشان معلول عشق انسانی و تأثیر پذیوی عاطفی نیز نمی شوند. شخص فقط بایستی به صوبی کونت لایتسی و سایر اتاتید ایک همچون کاتاداکی یکی از استادان زن در نظام باستانی وایراگی بیاندیشد شد تا بدین گونه عشق حقیقی را فهم نماید اگر عشق را خود پتندانه سرس کند آتشی می شود که خودش و دیگران را میسوزاند. خطر در اینجاست که همگان قدرت برانگیختن عشق را در دیگران و به جهت خدمت به خدا دارا می باشند اما چنانچه این قابلیت باعث فضونی یافتن عشق شخصی در چلاهای گردد به شکست در اهداف زندگی می انجامد ابدا سزاوان نیست که صد راه شخصی شویم که در قالب عشق شخصی و سایر عملکردهای آسفی برای خدمت به خداوند فراخوانده شده است دعوت خدا از فرد برای خدمت در زندگی از یک الگوی معین مثل کاب در معابد یا سایر اماکن مقدس پیروی نمی کند چه این خدمت از مجرای مسئولیت‌های شغلی؟ و یا حتی به صورت وظائف مادرانه صورت پردیدد اما هرچه باشد این طریقی برای کامل شدن است که فرد بدان فرا می شود و بستر ایست که وی با حرکت در آن می بیش از پیش برای دیگران مفید باشد پیروان اک می دانند که زمانی به درستی عمل می کنند که آنچه سوگمان از ایشان طلب کرده است را عدا نمایند و به دین است که قادرند بیشترین مشارکت را در کالود کیهانی مهانتا استاد حق در غید حیات که یکی از اعضایش هستند و همچنین نسبت به کل بشریت ایفا نمایند کالود مهانتا و تمامی کائنات سوگمان باوری دار است که با آگاهی ایشان عجین گشته است و این کالبد زمانی بهترین کارآیی را دارد که تک تک اجزاء آن در هماهنگی کامل با خداوند عمل نمایند چه بسا چون این کار کردی حمل بر خودخواهی شود اما به زعم اکیستا کار کردن برای صوب به معنای اتکاب به خود است نه خودخواهی و این تنها صورت صحیح بندگی می باشد و هیچ تضادی هم با خدمت به خدا ندارد یک اصل اساسی وجود دارد که میگوید تمامی روح ها قابلیت تکامل را دارند و عقل راهی است که خداوند بدان فرا میخواند و به روح این فرصت را می دهد که اراده آن را جامعه عمل بپوشاند زندگی در یک مدرسه ای در جهت خدمت به خداست چلا بایستی در این مدرسه اطاعت را بیاموزد این فرمانبری و تمکین امور او را نظم بخشیده و به وادی بهشتیش میرساند اکنکار هرگز مبدع تاریخی برای پیدایش خود قائل نمیشود چون این این مردود است اکنکار جز ای از پیتره دوره های مختلف تاریخی در جهان پایین بوده است و از روز ازل تا ابد در جهان بهشتی تابان خواهد ماند زمانی نبوده است که بشر فرصت یافتن را نداشته باشد آن همیشه در کنار او بوده است هرچند در بسیاری از زمانها او او نتوانسته است که این فرصت عزیز را به چنگ آورد او همواره یک زندگی توان با پرستش را سپری می کند و زندگی بهشتی را بندگی و حمد و ستایش کرکرانه خدا معنی می کند عهد و پیمان با که به هنگام وصل چلا با وی بسته می شود از قیود زندگی را به همراه دارد رهایی از دقدره های مادی آزادی از تخت بندهایی که عشق بر پایش می زند و خروج از دایره اقوای نفسانی و منیت ها که همگی حاصل اطاعت محض آن هم از روی میل و اشتیاق می باشد و این تازه مضعی مختصر از هلاوت زندگی بهشتی می باشد زندگی است که پیش از وصال فرد به جهانهای حقیقی شعف حضور بهشتی و ثبات زندگی در کمال الهی را بر او فرو بارد پیروان اک مکلفند که این زندگی را در همین جا و برای دنیا زندگی کنند میتوان گفت که این اصل کلید دروازه ورود به الهی است که شخص همواره آن را در تصرف داشته است و فقط همکنون آغاز به لذت بردن از آن نبوده است مطمئناً هر آنچه که رخ می‌دهد، حاصل گدشته و تطویر های زمان حال است و در حقیقت تجربه خداوند در زمان حال است که منتج به نزدیکی به او در آینده خواهد شد زندگی بیرونی یک چلا پیش خبر از زندگی در عوالم خالص معنوی را می‌دهد. این زندگی در فاز ابتدایی خود شامل پرستش و ستایش است زیرا در بدوه امر تمامی اکیست زندگی خود را از طریق تمرینات معنوی اک پایهگذاری می کنند همین منجر به یک زندگی بیپیرایه و مملو از شعف می گردند در کنه زندگی اک اعتقادی محکم و ثابت وجود دارد که چونین است در طریق اک مقصد نهایی همان راه است. بدین ترتیب راه چه کوتاه باشد و چه طولانی، چه سخت باشد و چه مملو از زوایای گنگ و تاریک، لحظه به لحظه اش مقصدی مقدس به حساب میآید. زندگی به رسم ماهانتا یعنی فنا این فنا و نیستی لازمه هستی است. بنابراین تمامی لحظات از ارزش بینهایت برخوردارند نبدیم خاطر که مبنای تقدم و تأخر قرار گیرند بلکه از آن حیث که لحظه ارتباس با خدا هستند لحظه ای که در آن ابدیت واقعیتی زنده است به طوری که فرد تمامیت زندگی را همکنون و در همینجا می فهمند. و گذشته و حال و آینده را یک جا درک کرده و بر آنها مسلط می‌گردد. گذشته بدون هیچ گونه تأسفی به کناری گذاشته می‌شود و آن زمان که طرح‌ها و نقشه‌های آینده کشیده می‌شود، نتایجش به خدا واگذار می‌شود. زندگی در لحظه حال خلاصه می‌شود و این تنها راه درک حضور مطلق ابدیت است زندگی اکیست کشمکشه بین این جهان و سایر جهان ها نیست و همچنین نباید به عنوان فاطله ای بین آنچه که اکیست قبلا بوده و آنچه که قرار است به شود بدان نگریسته شود حتی نمیتوان آن را در تضاد ما بین زندگی در زمان حال یعنی حضور ابدیت خدا و زمان حالی که به عنوان مقصد نهایی از آن یاد می شود درک نمود پس اگر زندگی اکیست به طریق مقایسه این دوگانگی ها قابل فهم نباشد احتمالا تمامیت مقصود او از جستجوی خداوند نیز نمیتواند درک گردد به همین علت از جمله محالات است که بتوان بر اساس معیارهای این جهان مفهومی برای زندگی در اک ارائه داد وظیفه اصلی چلا خدمت به خدا از طریق ماهانتاست. است اگر تمرینات معنوی اک جزئی از زندگی او باشد نمیتواند در انزوا بسر برد این تمرینات به فراخور حال او و در حق خود او با هدف ارتقاء معنوی و همچنین یاری رساندن به تمامی حیات به وی پیشنهاد می شوند حتی با جاری شدن شعف و آزادی عک در رگوپه فرد نبایستی قمهای جهان به فراموشی سپرده شوند قمهای دنیا غم قم ماهانتا و تمامی چلاهایش می باشند. اگر دکترین کالبد ماخونتا به عنوان ماهیت اصلی اک جدی گرفته شود و اهمیت شایسته و بایسته به تمامی وظایف و عملکردهای این کالبد داده شود آنگاه میتوان زندگی نیز به عنوان یکی از این عملکردها در نظر گرفت که مکمل سایرین است و در عین حال خود نیز توسط سایرین کامل می شود تمرینات معنوی و فعالیت های اک در دسترففت همه چلاها قرار دارند. اما ارتباط این دو بچه زندگی در اک از فردی به فرد دیگر متقید است. مثلا عدد قابل توجهی در این کابد به سرد میبرند که اگر وظایف معنوی خود را به انجام برسانند، فرصتی برای انجام آدهانه مراقبه‌های های معنوی و ابراز ارادت به سودماد نخواهند داشت چون این زندگی‌های فعالانه این نه تنها بدون شعر نیست بلکه عملی به واقع پرارزش در کاربد کیهانی مهانتاست اکیست به بغیر از کلاس های دارای جایگاهی در مقیاس وسیعتر نیز می باشند. اما تاریخ جهان کاملا خالی از نقش افاتید اکت و کسانیست که از آغاز زمان در خان فیزیکی و در گذر اعصاد پیرو اک بودند این اساسید اک بودند که نژاد بشر را متمدن ساختند آنان آموزش، سواد و دانش اندوزی را زنده نگه داشتند و در طی دوران بعد از اصر طلایی اقوام بدوی را کشاورزی و دامپروری آموختند همینان بودند که بیشترین تأثیر را بر زندگی مادی و همچنین معنوی بشر از خود به نهادند هیچ چیز مد نظر افاتید عک نبوده است مگر ارتقاء معنوی نژاد بشر. هر چیز دیگری بغیر از جلوه معنوی محصول فرعی تلاش ایشان در راه کمک به تکامل بشریت و از طریق تمرینات معنوی اک بود است شاید اشتیاق به مفید بودن به حال خدا و هم نوع یکی از مهمترین انگیزه هایی باشد که شخص را به طریق اکنكار کار میکشاند اما این هدف اصلی زندگی در اک نمی باشد. یکی از جدل هایی که همواره از ناحیه خویشان و دوستان و ضد دانشپژوهان اک به کار گرفته می شود آن است که نتیجه این طریق معنوی قفلت از زندگی مذهبی ایشان است اما حقیقت این است که جوینده با آگاهی نسبت به توانایی‌های درونی خیش درمی‌یابد که در طریق عک محبت زندگی ارزشی به مراتب بالاتر از آنچه او میتوانست تصور کند را دارد میباشد که در هیچ طریق دیگری یافت نمی‌شود اما از آنجایی که ارزش زندگی عملی و یا شغل اکثرا با معیارهای معمول تخمین زده می شود در ابتدای کیست ناگزیر است که تحقیق کند که توانایی هایش در کجا بیشترین صلاح و منفعت را جاری می سازد ولی پس از مدتی می بایست این دیدگاه را مستقر سازد که خدا مرا به چه کاری فرا میخواند؟ زیر و توانایی فرد فقط یکی از فاکتورهای پاسخگویی به این سوال است زیرا داوطلب زندگی معنوی در برخی از مقاطع خدمتش خود نیز میباید آموزش ببیند اما سؤال بنیادین آن است که مگر انسان میتواند در محملی غیر از اکم تأثیر داشته باشد این بر هر آن کسی که به موقعیت قدیم خود پس از آشنایی با عک بازگردت روشن می شود تنها چیزی که شایان اهمیت است پیروی از فرمان است که به تمامی کسانی که ندای ماهانتا استاد حق در غیر حیات را می شنوند ناظر می گردن. اگر کلا فکر کند که این جستجو به توی کمال فقط از طریق ترک دنیا به دست می آید حتها بیشماری بر وی آره از میگردند ویرا همه نمیتوانند در سومعه ها و دیرها کنج ازلت گذینند یا به تنهایی در قارها به ببرند اما این طرز فکر فریبنده اده زیادی را جلب خود کرده است زندگی در اکنکار برای روح‌های فعال در نظر گرفته شده است و در اصلی یک جستجوی فردی برای خداوند است آن به دانگونه که عوام ذهنان غرقه در امور دنیوی تصور می‌کنند، میدان نبرد با کل نیست تا زمانی که فرد بر مبارزه روزمره با کل متمرکز باشد توجهش از اک سرب شده و بر مقولات منفی جستار می نماید. او برای رستداری خود بایستی پیوسته بر اک نظر داشته باشد راهی که او را به هیچ شرط شروطی به لنگرگاه آزادی میرساند. عضویت دائم ایک برای کیست از اهم امور است. این بدان معناست که ایشان در قالب یک جامعه متحد فعالیت کرده و به صورت گروهی خدمت میکنند و همین که فرفد آنها به صورتی نادیدنی و سری به یکدیگر متصل می باشند. آنها صرف نظر از فاصله فیزیکی خود می توانند با دیگری تماس و ارتباط برقرار سازند این را همیشه باید به خاطر داشت چرا که یکی از اصول اسرار اکنکار است قارنشینی در کوهستان‌های دوردست و همچنین عضلت در یک بیشه دور از دست کسی را تطهیر نمی کند. بلکه آن است که شخص بتواند به تواند به واسطه انزباتی، آگاهیش را تا کرانه‌ای گسترده سازد که ابتدا در زوایای پنهان قلبش استاد حق در قید حیات را ملاقات نماید و سپس به همان نهج یا با سایر مقدسین ارتباط برقرار سازد. او نتایج شگفت‌انگیزی میگیرد به کشف می‌کند که کنارگیری از جامعه لزومی ندارد. او میتواند با سایر اکیست ها آن هم بدون نیاز به وسائط ارتباطی و راههای بیرونی تماس بگیرد او میتواند سالیان سال تعالیم استاد حق در غید حیات را بدون ملاقات با او در کالبد گوشت و خون دریافت کند در حالی که فرسنگ با او فاصله دارد هیچگاه بر چیزهایی که چرا نبایستی انجام دهد تأکید و تکیه نمی شود این شرط تحصیل شعف و رسیدن به جهانهای بهشتی نیست اما در مواقعی لازم است که تذکر داده شود. آنان که اکنکار را پیشه می کنند نبایستی سرگردان شده و دانش را از منابعی خارج از طریق اک بجویند. اگر چنین کنند هم به خود هم به فایرین zarar میزنند و نمی توانند مدت زیادی در این جهان دوام بیاورند. اگر مرغی بر روی تخم ننشیند جوجه ای از تخم بیرون نمی آید. او پیر و فربه شده و بدون اینکه زایش و کسرت کرده باشد در مدت کوتاهی میمیرد اکیستی که از جایی به جای دیگر از معلمی به معلم دیگر تغییر موضع میدهد دل سرد شده و ایمان خود را از دست میدهد برای کسی که پیچیدگی هایی در فهم عقالیم بهشتی دارد هیچ مرجعی به جز استاد حق در غیر حیات نمیتواند گره از کار او بگو شاید مشکل او در اینجاست که میخواهد هر یک از طبقات بهشتی را بر اساس ایدئال های خود در زندگی مادی شناسایی کند دو مغوله ناهمگون که هیچگاه سر سازگاری با یکدیگر ندارند جهانبینی مذاهب کهن همواره به انسان امید می داد که خدا یا خدایانش از طریق گیاهان مزاره و گوشت حیوانات جنگل او را تقویه میکن و از او در سرپناهی مثل یک قار محافظت می نمایند این ایدهال همچنان در رگ و ریشه انسان استوار مانده است. کم اینکه امروزه از سوی کشیشها و متافزیسیان ها به او گفته می شود که خداوند مراقب عمورات اوست. مشروط بر اینکه او برای درخواستها و حاجاتش دعا کند. به او تلغین می شود که این حق اوست که در سعادت و خوشبختی زیست نماید زیرا خداوند بخشنده است و به هر آن کس که او را با دعا و عبادت پرستش نماید برکت میدهد این مضامین بر کایه زمینه های فکری روحانیت شکل می گیرد تا به پیروان خود خوراک لازم را بدهند خداوند هیچ کس را در زندگی سعادتمند نمی سازد. مگر آنکه، از قوانین معنوی تبعیت کرده باشد قوانینی که اگر از او پرسیده شوند حتی یکی از آنها را هم نمی و به نظر می رسد که انسان از میراث خود در نزد خداوند قافل بوده و امیدی به بازگشت او به آغوش اک جایی که به آن تعلق دارد نیست اعمال او فقط زامن بقای جسم فیزیکی اوست و حتی تا زمان فحولت سن نیز توجهی به بقا در سرزمین های دور ندارد او به حدی در افکار سنتی خود بیتوته می کند که دیگر اجازه ورود هیچگونه طرز فکر جدیدی را به آگاهیش نمی دهد. او نسبت به راه و رسم زندگی خود متعصب شده و حتی اگر بخواهد نیز نمیتواند خود را متحول ساخته و طریق دیگری را پیش سازد هرچند که او خلاص این را ادعا می کند اما همین که عقاید نو در کفه مقابل عقاید مذهبیش قرار میگیرند، او برای محافظت از آموخته های کودکیش و هر آنچه که در طول مدت زندگیش کسب کرده وارد ارسه کارزار با این موجه نو می شود در صدیر بهشتی نه زمانی هست و نه مکانی این یک بحث فلسفی نیست بلکه حقیقت محض است و هر آن کسی که با فعالیت در طبقات درونی مانوس باشد آن را با دیگران تقسیم خواهد کرد اگر چلا به شخصی بیاندیشد با او در تماس قرار گرفته است اگر تصویر آن شخص را به وضوح در ذهن خود تصویر نماید مجاورت بیشتری با او حاصل می‌کند مجاورت ذهنی با آن شخص یک اتمسفر فکری را که حامل عقاید خاصی در رابطه با شخص ثانی است خلق می کند. شفادهی به همین صورت انجام می گیرد. همچنین تسخیر دیگران نیز به همین نحو می باشد. چیزهایی که هیچ چلایی در اک مجاز به انجام آنها نیست اگر شفادهنده در هین مراقبه ذهن خود را بر وضعیت های خاصی متمرکز کند حالات او به طرز موثری بر کالود آتفی فرد دیگری که تقاضایی دارد نفوظ کرده و شفاگر را در تماس مستقیم با شخص متقاضی قرار می دهد این یکی از کاربردهای عملی قدرت اکمی باشد و شخص بایستی با درایت و تعقل از آن سود جوید تا لبه تیز شمشیر خیال گزندی به وی نرساند تا وقتی که جهان از کاربرد برد بهینه نیروی ایت قافل است اما بهتر که آنان که می دانند، چیزی به زبان نیا برند. زیرا اگر این دانش بی هیچ تبعیض و تمایزی ترویج گردد و داده های آن به کسانی که ظرفیتش را ندارند ارزانی گردد آثار زیانبارش بیش از منافعش خواهد بود هر پیامی به شخصی ثانی بایستی در لفاف و با های ساده ادا شود زیرا تصاویر فکری چارچوبی قدیم از قوای ذهنی است و قبل از ابداع زبان کلامی بشر مورد استفاده بوده است خواه اینکه که فرد خواهان رشد و ارتقا بوده و خواه شفایی را طالب باشد حدث اصلی خلق از متفری موضوع در اطراف فرد بوده است تا پاسخ یا واکنشی عاشقانه از سوی روح ابراز شود. با بروز این واکنش جنگ تمام می شود زیرا دروازه های روح از درون گشوده شده و راه را بر قدوم ماهانتا استاد حق در قید حیات هموار می سازد. او بر قلب شخص نفوذ نموده و با دستگیری از او گره های معنویش را باز می کند این بهترین راه برای کمک به تمامی کسانی است که قادر به انجام کاری برای خودشان نیستند. اگر فردی در معرض حمله یک موجود غیر ارگانیک یا انتیتی از نظامهای دیگر یا سایر طبقات هستی قرار گرفته باشد، در تمامی موارد راه حل به همین گونه است. تا وقتی که خلالی در حاله فرد ایجاد نشود، راه نفوذ به درون روح بسته است. اما حاله همواره از درون و به واسطه ترس و یا میل به بیرون آمدن برای مقابله با عامل مهاجم سوراخ می‌شود اگر شخصی قادر به کنترل این واکنش ناخودآگاه عاطفی باشد مرزهای حاله انسانی نفوذ ناپذیر شده و قطعا در برابر تجاوزات روانی از او دفاع خواهد کرد اما این کسانی که اعمالی مثل حالبینی حال درمانی یا تنظیم حاله را انجام میدهند گمراهانی هستند که حتی خود نسبت به کاری که میکنند آگاهی ندارند آنها انددن یا سون حاله را بر روی انتیتی های پلید پلیید میگشایند. طبقه سیری و تمامی زیرطبقاتش مصدرهای تجاوز و خشونت هستند. آه کفت طبقه از خلوص بیشتری برخوردار است اما بعید از کسی که به درستی پرورش نیافته باشد بتواند به سرحدات آن برسد تنها آموختگانی که انضباط و آموزش لازم را تحت نظر ماهانتا استاد حق در غیر حیات فرا گرفته باشند میتوانند به کرانه های خالف جهان استیدی برسند در کیهان مادی قانون قطبیت یا قانون تضادها حاکم است هیچ چیزی وجود ندارد مگر در رابطه با متضاد خودش این قانون در جهانهای روانی یعنی اصیری، اللی و ذهنی نیز مستاق دارد اما در جهانهای بهشتی چون این وجود ندارد اینجا اقلیم حقیقت است و از تضاد و تناقض خبری نیست ولی در صحیفه های مقدسه جهان کلامی در این مورد به میان نیامده است این نوشتهجات مدعی هست که نیکسیرت داخل در بهشت برین شده و شرور برای همیشه در آتش دوزخ گرفتار می آید. این همان قانون قطبیت یا تضاد می باشد. خوبها خوبی را جذب می کنند و بعدها جذب اهریمن میشوند ولی در وضعیت حقیقی قطبیت یا واکنش های شیمیایی بین مواد وجود ندارد و روح مختار است که تا زمانی که در چارچوب قانون یگانه بهشتی حرکت می هر آنچه را که مایل است انجام دهد این قانون میگوید عشق همه چیز است مشیت تو جاری باد این تمامی ارواحی که به منزلت بهشتی می رسند بایستی خود نیز به قانونی که وضع میکنند پایبند و استوار باشند. این قانون خویش تکایی یا استقنای روح فردی است. روح درک میکند که خود قانونی بر خویشتن است. اولین اینکه بایستی عرشق باشد به عبارتی نیت خیر خود را بر تمامی ساکنان جهانهای بهشتی نسار نماید. دوم اینکه بایستی خودش قانون خیش را وضع نموده و از آن طبعیت نماید و چون این باید در هماهنگی کامل با قانون کبیر یعنی عشق به همه چیز عمل نماید در جهانهای روانی و مادی همه چیز رابطه با متضاد خود هستی دارند بدون کوه دره به وجود نمی آید و تا سایه نباشد نور درک نمی شود شیطان در قیاس با نیکی معنا مییابد خرد است که جهنم را میآفریند و تا پیری در کار نباشد جوانی فهم نگردد زمانی که روح وارد اقالیم جاودان یا جهانهای روح خالص میشود دیگر تضادی نمیبیند نور نور است چیزی مخالف آن وجود ندارد و توت یگان قطب والا سرین مراتب است. اکیست بین است و میداند که چگونه از قانون تضادها گیری نماید او متوجه است آن زمان که از آگاهی خود در جهانهای روانی استفاده کند جبر قانون قطبیت بر او حاکم است اما مادامی که در جهانهای خالص خدا به سر میبرد با تکیه بر آگاهی خود می تواند قانون قطبیت را در جهت مفاله خود بکار گیرد آگاهی تام در جهانهای مادی و روانی وجود ندارند و این به واسطه وجود دو اصل مذکر و موننف است مذکر مثبت فعال و پیشرونده است در حالی که موننف، منفعل، تأثیر پذیر یا اکسلمالی و ماهیتی پس روانده می باشد. اگر اکیست این دو اصل را در درون خود شناسایی کند از آن پس در لطف آنها به سر می برد. چیزی تحت عنوان تیپ مطلق مذکر یا تیپ مطلق مؤنس در این جهان وجود ندارد از آنجایی که مرد و زن هر دو در جهانی منفی یا مادی زندگی می کنند همه امور و پدیده ها، میزانی از اصل منفی را به خود می گیرند که آن هم صرفاً برای برقرار نگه داشتن اجزاء زندگی کالبد فیزیکی تعبیه شده و انتباغ با نیازهای زندگی آن را اختضام می کند همینجاست که متافیزیسیان دچار اشتباه می شود متوجه این نکته نیست که در این دنیا انسان از بد به تولد در طرقی منفی آموزش میبیند. و بایستی حد اقلی از انصار مادیت را درون خود به ظهور برساند تا بتواند در این جهان مادی از خود محافظت نماید و بنابراین صرف نظر از آن چه که میپندارد و یا هر نامی که بر آن میگو طبعا تمامی عبادات و نیایش خود را به درگاه این منفی به جای میابرد پس آگاهی انسانی در جهتی پرورش یابد که نسبت به تمامی تأثیرات و تجلیات اکسولمن نشان دهد. او طوری تربیت می شود که برده پدیده ها باشد از آنجایی که آگاهی انسانی وضعیت منفی رو به توی مرگ و زوار دارد او بیشتر در راستای هنر مردن تعلیم میبیند تا هنر زیستن و به همین دلیل مشخص می شود که انفعال و منفی بودن شامل کیفیات اکسولمری و نیاز بوده و همواره قالبند بدیم نعنا که هر آن کس که قویان است برده جهان مادی می گردند اکثر من نسبت به پدیده این جهانی فرد را به راحتی در مقام نیاز نسبت به آن قرار میدهد. و با قرار دادن خود در معرض این فاز از نیروی کل خود را هرچه بیشتر در نیروی منفی قرار میدهد و هرچه بیشتر شبیه آن می شود و بیشتر هم دستخوش درد و رنج می گردن. به همین دلیل است که ماهانتا استاد حق در قید حیات حوار به چلا نسبت به خواندن متون مقدسه مذهبی اسراری و موضوعات روانی مشدار می دهد چنانچه پایه های باور چلا در اکنکار قوی نشده باشد با کنش تندی را در قبال محتوی این نوشته جاتر از خود بروز می دهد و به زدریج از طریق احکامی نظیر نماز دعا نیایش و در خواست کمک از خدایان لامکان به آنها وابسته می‌گردد. قانون کل این است که همجنس جنس هم جنس را جذب نماید. آنان که در پی زندگی مادی میباشند یکدیگر را جذب نموده و کسانی که خواستار زندگی معنوی هستند نیز به یکدیگر خواهند پیوست. هیچ کس نمی‌تواند کارکردهای معنوی را برای کسی که تا به گردن درگیر مقولات مادی زندگی است شرط دهد شخص با استقرار خود در مسیر اقتصابات معنوی است که بیشترین بهره را میبرد اگر او زندگی نامه بزرگان معنوی را مطالعه کند و زندگیش را در جایگاهی بنا کند که اک حرف اول را در آن میزند موانع را هرچه بیشتر از سر راه بر میدارد با این حال او بدون مداومت منظم در تمرینات معنوی اک به این توفیقات دست نمییابد. این تمرینات او را در وضعیتی قرار میدهند که اک را هرچه بیشتر جذب میکند و به اینسان متصرفات معنوی خود را افزون میکند به جهت آنکه آگاهی انسانی در مسیری منفی رشد میکند و شدیدن تحت تسلط نیروی کن واقع است قلیلند اند که خود را فراتر از عقاید مذهبیشان اوج داده و بپذیرند که کل هستی از تقدسی الهی است. ایشان خلق و خویی به خود داشته و واقفند هستند که اساتید اکمیز خلق و خوی خاص خود را دارند شاید او از اساتید نفلت بردادند اما اساتید هیچ گاه او را رها کردند و همواره با او هستند اگر کسی بخواهد اساتید را با مصادیق کل مثل ثروت، آسایش و تجملات مادی به در کمال شگفتی مشاهده می‌کند که آنها تمامی این مطامع مادی را به هیچ می انگارند بیخبرانی که اقدام به تخریب و رنجه دیگران می‌کنند همه تحت سلطه یک علت هستند ایشان تحت سلطه ی نیروی کل بوده و برده قدرت منفی اند، اما دیر زود بایستی مکافات آن را متحمل شوند. به هنگام راهنمایی یک فرد و یا در اثنای اصلاح یک کیفیت چلا نبایستی این اجازه را بدهد که خودش دستخوش تغییرات سوژه گردد زیرا با این کار او اثیر آن پدیده یا شخص شده است واکنش و یا پاسخ به محرکات می در تعادل صورت گیرد در غیر این صورت و طبق قانون کل این محرکات جزئی ای از وجود فرد می شوند مثلا اگر شخصی نسبت به نگرانی اکسولمن نشان دهد نگرانی جدیدی را پایهگذاری گذاری می کند. یک تمایل فطری در تمامی انسان‌ها وجود دارد که آنها را به سمت بردگی نیروی کل سوق می‌دهد. این غریزه توده هاست و در واقع نقطه اتکای ایشان است زیرا در وضعیت آگاهی انسانی و در باطن خود میل به دنبال روی از یک رهبر را مشتاق است که این هم از اصول موضوعه کل است باعث می شود که آدمیان در حالی نیمه انفعالی خود را به یک رهبر بسپارند تا کارهای ایشان را انجام داده به جای آنها فکر کنند و بار مسئولیت‌هایشان را بر دوش خود نهد قافل از اینکه این, این رهبر ایشان را با انباشت بیشتری از کارماها، افکار و مسئولیت‌ها پر می‌کند. بشر در وضعیت آگاهی خود طالب مادیات است. زیرا به نیازمندی عادت کرده است و اکثران هم نمی‌توانند این عادت عارضی را ترک کنند. قانون اک میگوید که آرزو علت رنج است بدین معنا که اگر شخصی بهایی بر خودش بگذارد دیگران را از اطراف خود ترد می‌کند، اما کسی که از قیمت گذاری بر خودش و توانایی‌هایش اجتناب میکند در میابد که همگان به دور او حلقه زده از او تمنای دستگیری دارند زیرا احساس میکنند که میتوان به او اقسام کرد. خودداری از قبول یک موقعیت به پیروزی میانجامد زیرا این فعل عملیست است مثبت. این نوعی بایکوت میباشد و همینکه که فرد آن را به ظهور میرساند همگان در برابرش سر تسلیم فرود می‌آورند. این رخنه کردن در شکاف آگاهی آنهاست. به خصوص اگر جماعت او را تحقیر و یا به وی تهمت روا کرده باشند یک بار که چون این کاری انجام دهد برای همیشه از این کیفیت لبریز می شود او دیگر تبدیل به پرچمدار نهضتی در جهان مادی شده است زبور مثل در ایک مستلح است که می گوید در مغرب و معشوق به جانب مشرق است حس زمانی که شخص نیازمند عشق انسانی است به واسطه این گسل ذهنی نیازش به این آسانی مرتفع نمیگردد. و باز هم به واسطه وجود همین همیشه است که نجاد بشر به دنبال خدا می گردد خدا محتاج عبالبشر نمی باشد بلکه انسان به آن نیاز دارد و این اصل باعث شده که همواره در میان روحانیت بر سر انتخاب شایسته‌ترین فرد برای قرار گرفتن در مصند میانجیگری بین انسان و خدا منازعهی برقا باشد این واسطه منجی انسان ها بوده و انفاسش کلام خداوند است هیچ کس منزلت نجات بشریت و یا روح را ندارد مگر استاد حق در قید حیات او تنها مقامی است که بر اریکی وفاست رحمت بین روح و خداوند تکیه زده است کار سایر پیشوایان با طبقات اثیری و روانی است و کلامشان توان با عدم قطعی است و تردید است هرچقدر خدا را به جویی آن را کمتر خواهی یافت تنها زمانی که فرد دست از جستجوی خدا برمیدارد و با توقف کشمکش هایش و باور کردن ماهانتا زندگی را همان گونه که هست میپذیرد و توجه خود را به جای شخصیتهای بیرونی بر فردیت خودش میناهد آنگاه است که شعف و صور را تجربه میکنند آنان که به سوگمات ایمان دارند خود را در وادی استقنا و کفانی که به کل می میکنند خود را در وقتی احتیاج میاندازند این علت اصلی اندیشیدن انسان به خدا و ریشه تمامی برداشت های فردی از مفهوم پروردگار به عنوان وجودی برتر می باشد او در پیگیری پروردگار متعال متوجه نمی شود که در حال عمل کردن در شیاری است که مناسب مقصود کل است. در حالی که کل هم تابع اراده آن است، سعی و اقدام بر دریافت نور و صوت خدا طریقی مردانه و دشوار است و در عین حال طریقتی معنیست و منفعلانه می باشد پس تسلیف چلا برای ورود به جهانهای بهشتی و بحرمند شدن از نور و صوت سودماد چیست؟ پاسخ راه میانه است طریقی خونسا که در تقرب به اک و خداوند مذکر است و نه است. او در قدم اول ماهانتا استاد حق در قید حیات را به عنوان یگان مجرای جهانهای حقیقی می پهدیدند. تا وقتی به این موقعیت حضور نائل نیاید همواره در حال جستجو و تلاش برای ورود به شاهراه آتمالک جهان پنجم یا نخستین مرتبه جهانهای معنوی است او بایستی با قرار دادن خود در وضعیت بینیازی یا استقنا شروع کند وقتی شخص این روحیه را اتخاذ می‌کند دیگر به حوادث و امور جاری زندگی واکنش نشان نمی‌دهد او حتی استاد حق غیر حیات را نیز از روی احتیاج نمی‌پذیرد بلکه بدین خاطر است که استاد به او عشق ورزیده و او را در تنف حفاظت خود می‌گیرد او پدیرای عشق استاد می شود چلا نبایستی انتظار استراحت داشته باشد و یا وضعیت و ساختاری معین را منزلگاه دائمی خود به حساب برند منزلگاه او و تمامی ارواح فردی کل کائنات با تمامی کیهانهایش می باشد تقبیه و حسادت به دیگران و حتی تحسین سایرین علت رنج است اما حمایت و رحمت مهانتا استاد حق در قید حیات مایه عشق و آرامش خاطر است زیرا مهانتا نه برای کسی مذر است و نه تهدید کننده موقعیت اوست او نه به دیگران قبطه می و نه اشق خود را از دشمنانش دریغ می دارد با پویش در راه میانه چلا به دروازه بهشت می رسد با ایمان به مهانتا استاد حق در قید حیات آگاهی خود را از مرتبه کالبدی به جهانهای بالا ارتقا داده و با اعتماد به او و سپردن تقدیر خیش به دستان استاد به جهانی وارد می شود که در هیئت روحی خالی از خلل و حیاتش ادامه می دهد. انسان بایستی نهایتهای خوبی و بدی را در وجوه مختلف زندگی خود بیاموزد. که واقعا کاری مشکل است زیرا در غیر این صورت ای ندارد اندوخی که آن را معیار سنجش موقعیت خود در جهانهای مادی یا روح قرار دهد او بایستی همواره تعادل و کنترل خیش را تمرین کند اینها تار پود قماش خیش انضباطی اویند با این کار او از یوغ ابعاد پوشالی نفسانیات رها می‌گردد اولین نامخته در مکتب الهی آن است که دانش چیزیست که یک نفر آن را بر او شرح می دهد به تعلیم آن می و یا اثباتش می کند. اما دانستگی کیفیتی است که او آن را شخصا و با پژوهش های طولانی و طاقت فرصا برای خود آمخته است مرز برانی بین دانش و دانستگی موجود است اصول و فروع دانستگی را مبانی پایدار و جاودانه تشکیل می دهند نپایه های و مغولاتی که بر مرکب حواس سوارند و پیوسته در حال تغییر اصاتیده ایک می گویند که دانش حقایق الهی سراغاز خلد است اما رسیدن به این مرتبه نیز مستلزم گدر از جده این است یعنی دانش در معنای عام کلمه تنها با وقت زندگی به کوشش های عقلانی و ذهنی به دست و تنها مقدمه‌ای بر یادگیری اصول مقدت اکه است این نگرش ذهن را از نواد ناخالص می آلاید و به عمق بیشتری از اشیاء و پدیده واردش می سازند حقایق بلا فقط توسط روح درک می شوند. حواست انسانی تنها به کار نمایش نسخه‌های های شبیه سازی شده حقیقت می‌آیند. آیند رأس هرم هر واقعیت یا طرز فکری کیفیتی تحت عنوان خوبی می باشد. اما عدد اندکی ذات مقدس آن را با همین هواس معمول درک می کنند. البته نگرش آنها با سایرین اختلاف منظر دارد چنین این اختلاف منظری این گرایش تازه را بر حواس و ذهن متبادر می سازد که روح اشتباه نمی کنند. روح ذاتاً کانون دانش بودن محمل درک خوبی ها و زیباییها و نقطه تمرکز طریق معرفت سودماده است آن بسی قنیتر و گستده از دانش ذهنی بشر بوده و نه تنها نیاز از انگیزش های عقلانی است؟ بلکه منبع اصلی انگیزش های ذهنی فرد است آن حقیقت است حقیقتی که حاکم بر همه چیز است و نظم ذاتی موجودات را در تعلق خود دارد به همین دلیل است که برای طالبان مدینه فاضله این جهان اصلا دیده نمی شود آن بر تارک عرصه تاخت و تاز متفکرین زمینی در باب حقیقت قرار میگیرد آن لوگوس یا کلمه خداست اگر فرد انتظار دستاوردی از سفر روح دارد میبایستی گرد مذهب و عرفان را کاملا از دامان خیش برو رهایی از زنگارهای درونی فرد را قادر میسازد که ارکان درونی خود را در راستای دریافت بیواسطه دانستگی به کار گیرد اما این مستلزم خیش انضباطی است و تا چلا به چنین انضباطی دست نیازد نخواهد توانست به کشف حتی شمعی قاصر از ذات الهی نائل شود و در مسیری پرخار خاشاک و هولناک قدم نهاده است هرگز نباید نام سودماد و ماهانتا را بهانه تنبلی و اسباب خود بر بینی قرار دهد اگر چنین کند مستوجب است که این به حالت و انفعال ذهنی آن را برایش ساخته است با این دیدگاه هیچ کس در زندگی خواستار چیزی نیست مگر گشایش ارکان خفتش زیرا تنها به طریق است که پدیده ها را در تمامیتشان نقد می روانی است که اکیست ها را به واسطه وفادایی و وقف به اکنکار متأسف بنامند در هیچ کجای تعالیم اک کسی مشاهده نکرده که چلا در تار افرادهای مذهبی، نظیر مناسک و آیینهای شرقی، باستانی و یا شیطان پرستانه بیافتد و یا حتی بخواهد اکنکار را وسیله افتایش مخاطبین و طرفدارانش قرار دهد اکیست آن از خود بی خودی زیبا و عجیبی که محصول وحدت با می باشد را شناسایی کرده است او با رسیدن به مرزهای بهشتی و از طریق سفر روح به چنین حال خوشی رسیده است این حال فقط سایه ای از تعالیم برتر است جدار بین اک و مذهب روح و کالبد معنویت و مادیت در جهانهای پایین پایان نمی گیرد بنابراین دیدگاه های فوق بر مذهبیون بیگانه است زیرا ایشان توسط کل هدایت می‌شوند. آنها ایاره همه چیز را با محکی معنوی مادی می سنجند. اما محک اکیست تمامیت وجود انسان است در تمامی ابعادش در نظر او کالبد فیزیکی گور روح است و یکی از ابزار طی طریق در عک می باشد. اکیست یاد میگیرد که با حداقل نیازها و امکانات فیزیکی زندگی کند. او میتواند به نسبت دیگران با غذای کمتری هم زنده بماند. لزومی لضوحی... هم ندارد که مثل اکثر آدمها اوقات فراغت زیادی داشته باشد. زیرا بایستی تمرینات و امور معنوی را در اولویت قرار دهد مشغله اصلی او محاسبه خیشتن و زندگیش می باشد او با پیش کردن خیش انزباطی آموخته است که چگونه با خودش و به خاطر خودش زندگی کند او مسئول خیش بوده و کردارش آمیخته با است که با وجودش سرشته است به عبارت دیگر او کامل شده است و به جای آن که معلول جامعه، کشور و یا نژاد بشر باشد آگاهانه جزئی از کیهان هستی میگرده اکیس به هیچ وجه به جستجوی خدا بر زیرا این باور در زمیرش نقش بسته که همه در جوار آن به سر میبرد دیگرانی که به جستجوی خدا برخواستند از خیش تکایی بدورند و در این راه از دست خدا عصبانی شده و همچنین مورد قذب او قرار می گیرند. این کلام قصار از عک جوشیده است خدا هم نمیتواند بی ایمانان را قانع کند اما مؤمن نیازی به دلیل و مدرک ندارد آنچرا که ذهن انسان به عنوان فهم میشناسد؟ و در قبال ایمان مذهبی و رضایت از امور معنا دارد و نسبت به سایر بلغوبه ولی در تمامی نوشتجات اک مفهوم بلا تغییر سودماد و تجلیات آن در تمامی زوایا و ابعاد به شکلی واضح و روشن نمایان است این شاه بیت مطلب و معجزه اک می باشد که معید پیوستگی فرهنگها و به عبارت بهتر همه اخیست هاست. نیروی جمله ادیان و آینها بسته به جاذبه ای است که تولید می کنند. آن اصلا به تعداد پیروانشان بستگی ندارد بلکه متکی بر باور و امید است که ایشان را به سوی مرا می خواست می کشاند میکشاند. قاائم بر عشق پیشوای آن مذهب است، راز نیروی اکیستا نیز همین است. ماهانتا استاد حق در غیض حیات. از آنجایی که تمامی ادیان و مکاتب از یک منشعب اند هیچ چیزی برتر از آن نیست. بدنه اصلی تمامی مذاهب مبتنی بر دوگانگی است، اما در اک فقط کلیت سودما مد نظر چلوهاست. هیچ چلایی نبایستی از اقامت در جهانهای روانی جایی که ساختار زندگی دوگانگی و تضاد را اقتضا می کند خوشحال باشد چلا به پیوستگی حیات واقف است و نباید به کمتر از آن رضاده هست اکیس ها آزاد و دیگران برده توهمات و محصولات روانی هستند کرنش و پرستش در ایک جایی ندارند اینها برای روح بازدارنده هستند اکیست به سوی سوگماد قطبیت میگیرد و کلیست به سوی کل کشیده کشیده میشود تیپ مطلوب آرایش ذهنی یک اکیست فهم تمامیت موجودات و پدیده هاست. ذهن بشر در جهانهای روانی تجزیه شده و به تفکر بر حسب اجزا و طبقه بندی ها محدود میگردد اکیست متضاده این کیفیت ای است. او دیدگاه وسیعی را از آن خود میکند که از دریچهش همه چیز را در پیکره ای واحد درک میکند این نقطه قوت اکیست است او در رویارویی با مشکلات زندگی این توان را دارد که به تنهایی آنها را حل و فصل نماید او شخصی با یک ذهن متعادل است که قالب شخصیت خود را در هم شکست است درست مقایر با کسانی که در بند جهان نسبیت ها هستند و نمیتوانند حمله به دیگران را پیش نگیرند این روند دائم جهانهای دوگانه است زیرا کل با فریب انسانها ایشان را ترغیب به تجاوزات فیزیکی، کلامی و ذهنی نسبت به هم نوعانشان می نماید این یادآور این نکته است که کل دستن در کار اقوای تمامی است که بر حفظ آگاهی انسانی سماجت می کنند عبارت کلیشهی و عاطفی، که و حلقه های روحانیت به هنگام تک و تقلای فرد در بحران زندگی به کار میبرند این است خدا کمکت میکند. کلامی نادرست و ناسواب اکثر کسانی که در آگاهی انسانی به سر میبرند تصور میکنند که خداوند بر اساس علاقی شخصی به او زندگیش را نجات می دهد اما چه دلیلی دارد که خداوند چون این کاری برای شخص انجام دهد چون این افرادی البته به زندگی بهتری چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی دست می آبند. اما این حاصل هویت تحتانی ایشان است ابدیت و تمامیت هستی در کنار انسان است و او مختار است که زندگی را انتخاب کند و یا مرگ را برگزینند. این پاسخی معماگونه به معمای بشر است حقیقت آن است که خدا در جهانهای پایین هرگز به چیزی اعم از انسان یا سایر مخلوقات دلبستگی ندارد آن اعتباری برای انسان و عناصر فیزیکی قائل نبوده و هیچگاه در سلسله کارماهای جهانهای تحتانی مداخله نمی کند آن جهانها را به توسط مهانتا استاد حق در قید حیات می گرداند. استاد فردی همانند تمامی انسان هاست. زیرا در همین جا و در کالبدی فیزیکی به میبرد. می برد. او به خودی خود قادر به کاری نیست و نیرویش را از اک می گیرد زلالی که از سریر خدایی است. و او را مجرای آن قرار می تا به سال اکرا به همهگان بشارت دهد او میگوید آنکس که از تو نفرت دارد از من متنفر است و آنکه به تو عشق می عاشق من است سودماد کلام خود را به ماهانتا استاد حق در غید حیات نازل می کند و به او میگوید که هران کس در کار کرد اخلال نماید کیفر میگردن اما آنان که عاشق ماهانتا استاد حق در قید حیات هستند و قلب خود را تقدیم به او می کنند صاحب تمامی ثروتهای زندگی می شوند شخص مادامی زندگی می کند که آن را تسلیم کرده باشند ثمره تسلیم زندگی فردی به نیت کسب زندگی پیرایش کلیه صفات فانی آگاهی تحتانی به مدد ماهانتا آن ناظر کبیر است. از آن پس این دریای عظیم آگاهی خانه ابدی روح می شود. یگانه طریق رستگاری فردی پرنبودن گسل وجودی انسان و آگاهی تام نسبت به آن است.